ام این داستان جانشین نادان به خدا و باسلام حاکمه دانایی بود که بر سرزمین پهناوری حکومت می‌کرد. ادالت صلح و صفا در این سرزمین بسیار فراون بود و مردم از زندگی کردن در اون دیار و در سایه این حاکم خوب خوشنود بودند این حاکم فقط یه پسر داشت که از بخت بعد نادانترین آدم اون دیار بود و حاکم از این موضوع بسیار رنج میبرد زیرا اون دیگه پیر شده بود و وقتش رسیده بود که برای خودش جانشین انتخاب کنه جانشینی آگاه و هوشیار که به فکر معلوم و کشور باشه اما پسرش اصلا به درد این کار نمیخورد و همه چیز رو به باد میداد حاکم پس از اینکه چند شبانه روز ی جانشینی خود فکر کرد به این نتیجه رسید که به جای پسر نادانش بهتر داناترین مشاور خودش رو به تخت بشینه و مشاوره خود رو احضار کرد و در تصمیمش با اون حرف زد اما مشاور حاکیم که مردی آقل و دانا بود گفت شما به من رفت دارید ولی این درست نیست که یک بیگانه به غیر از خونوادی شما به تخت بشینه حاکیم گفت پس چیکار باید کرد؟ آیا راهی سراغ داری؟ مشاوره گفت بله به نظرم بهترین راه اینه که همون پسرتون رو به جانشینی انتخاب کنید اما قبل از این کار یک همسر خوب و دانا براش بگیرید به این ترتیب همسرش به اون کمک میکنه تا با عقل و منطق کشورش رو اداره کنه حاکم از این راه حل خوشحال شد و از مشاورش تشکر کرد و تصمیم گرفت پسرش رو به عقد داناترین و با ترین دختر سرزمین بیاره پیدا کردن این دفتر آسون نبود برای همین حاکم نقشه کشید و دستور داد معبد زیبایی در شهر بسازند هنگامی که معبد تمام شد فرمان داد انبن مجسمه رو داخل معبد نگذارند. سپس از همه دفترهایی که در سرزمینش زندگی میکردم دعوت کرد تا برای دعا و به معبد بیان چیزی نکزش که دخترهایی زیادی از نقاط مختلف راهی معبد شدند اونها با تمع فرابون در مقابل جایگاه زانو میزدند و آرزوی ازدواج با شاهزاده را میکردند اما هیچکدوم متوجه نشدند که مجسمه بورای مقدس در معبد نیست روز چهارم بود که چوپان پیری با دخترش به شهر مدند اونها شیفته ساختمون جدید عبادتگاه شدند و به داخل اون رفتند. پیرمرد چشمان خودش رو بست و مشغول دعا کردن شد. اما دخترش دعای اون رو قطع کرد و پدر در. بی خود دخت هدر نده. مجسمهی بودای مقدس در معبد نیست و دعا بیفایده است. پیرمرد از دعا خوندن بازمون افران های در اونجا نگهبانی میدادن ماجرا رو به حاکم گزارش دادن. حاکم شاد شد و با خود گفت بلاخره عروس سایندن پیدا شد. اما برای اطمینان بیشتر تصمیم گرفت خودش شخصا اون دختر را امتحام کنه. بنابراین به خونه چوبان پیر رفت و به اون دستور داد تا فردا صبح یک جفت افسار از خاکستر رو کنه. و اگر از این دستور سردی کنه سر سران رو قط خانه کرد. حاکم این هوچ با کرد و از خونه پیرمرد چوپان بیرون رفت. چوپان که گوی دنیا بر سرش خراب شده بود، گوشه نشست و ماتم گرفت. اون میدونست ساختن افزاری از خاک سر غیر ممکنه. دخترش که همه چیز رو شنیده بود، به پدر و بطقه هم و از اون خواست که به رخت خواب بره و بخوابه. وقتی پیرمرد خوابید، دختر برخواست و از علفهای خشک باخشه، یک جفت افسار بافت و بعد اونها رو روی سنگی گذاشت و آتیش زد های خشک سوخت و افساری از خاکستر روی سنگ نقش بست صبح روز بعد وقتی حاکم اومد یک جفت افسار ساخته شده از خاکستر رو دید به دختر امیدوار شد اما میخواست دوباره اونو کنه به همین دلیل به دختر گفت به پدرت بگو برای دیدن من به قصر بیاد اما صبح یا شب امروز یا فردا نباشه همچنین اون بگو از روی جاده و یا از میان دشت نباید بیاد حاکم این حکم رو کار رفت. بار دیگه پیرمرد به دردسر افتاد اون میدونست اطاعت از این امر حاکم غیر ممکنه گوشه نشسته سوزاننی هم گرفت اما این بار هم دخترش برای هم مشکل راه حل خوبی داشت. دختر به پدر گفت نیمه شب به قصد حاکم برو نه از جاده و نه از دهشت از هیچ کدوم عبور نکن بلکه از کنار جاده گذر کن تنها راه حل ای مشکل هم میده. همین کار رو کرد و نیمه شب به قصد حاکم رسید حاکم خیلی خوشحال شد اون میدونست همه این مهمه سخت با فکر دختر حل شده. پس از دختر برای پسرش خواستگاری کرد و چندی بعد عروسی اون سر سرگرفته. چند ماه گذشت اما حاکم هنوز خیالش راحت نبود. او اون میخواست بدونه که آیا حوشغ زیرکی عروسش پسر اون رو داننا کرده یا نه. اون نگران آینده سرزمینش بود. بنابراین روزی از پسر خواست که با او به سواری بره. اونها، سوار بهترین اصبهای خودشون شدند و چهارنل به سوی دهشت تاختند. وقتی آزمایش بود. حاکم از پسرش پرسید آیا میتونی اسب رو در حالی که دومش رو از سمتی به سمت دیگر میچه به طور همزمان یورتم راه بری؟ پسر حاکم گفت به حفتشون و فورا از اسب پایین پرید پایی رو دوم اسب رو به دست گرفت و اون رو از سمتی به سمت دیگه چرخوند و همزمان بر سر اسب فریاد کشید که یوتمه راه بره آکن آهی کشید و سرش رو تکون داد اون فهمید که پسرش همون نادانی که بوده هنوز همونه و هیچ فرقی نکرده اون میدونست این نادون هرگز به دانایی نخواهد رسید برای همین تصمیم گرفت تاج و تخت رو به عروس باهوش و زیرک خودش دستاره و با راحت بمیره ولی عزیزان این بود یکی دیگه از داستان های مردم مقالستان و با امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان خوبان قرار گرفته باشه و با آرزوی اینکه در داستان های بعدی همراه هم سطره بنده باشید شما به خدا خدا رو به خدای یگانه می خدا یار رو نگهدارتون